قلنا من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين در ناجه به روایاتی بود که مسئله معافلت کتاب و مخانفت کتاب رو نفرک کرده بوده. از کردیم این روایات رو به دو دسته است که تقسیم میشه روایاتی که نازرم به مسئله تعارض و روایاتی که در مسئله هست به حجیت روایات تعارض رو به روز خوندیم معنی و یک نواق نیستم اونی که از همه اینها به مهمتر است یه روایت واقعه از که خیلی فریعه مال مردم قطب راوندی که از شد ثبوت این روایت محل اشگاهه. و غیر از او برای یه روایت حالا روایت همارون نظره بسیار خب بود مشکل که خیلی وضوح مقنی نداشت خاطر این که کتاب رو با مخالفت آمنه با هم ذکر کرده بود خیلید اینکه یک پشمیش متنی کلن این کتاب داشت از که کرد راجب به بقیه رواید این رواید تا تو تمام شد رواید تو بست راوندهی خوبی بود اما مشکلشی بود که به لحاظ مصدر خیلی مشکل داره یعنی ما الان نمیدونی دقیقاً این رواید از کجاست با اصولا این کتاب بچوراوندی هنوز از اقوشنی نداره به نحوی رجاله به مرحوم استرابادی رسیده خیلی وضوحه امر نداره این روایت بچوراوندی این یک طریفه یک طریفیه از چه بحث معافق اتطاب شمخواده کتاب روایاتی که به استراباد ما در اصل بچیگن خبره در خود بچیگن از این طاقه فرشت بشه گفت مشهورترش یک روایت ایست که مرگوم کلینی هم تو ابواب علم کافی در اصول کافی اوبردن روایت ایست که ایشون به طریق مشهور خودش علی ابن ابراهیم صفیه 311 عدیم 1. یک حدیث شمایه چهار از باب شیچه باب تارست ایشون اوبردن علی ابن ابراهیم عن ابی هم نوفری عن سکونی همون طریق مشروع ایشان به روز سخنیه این عبدالله رسول الله بریم که این حسانی به اصطدا اصلش چی بوده به این نوع در نستنده قال رسول الله صلی الله علیه وآلیه وسلم اِنَّ عَلَىٰ كُلَّ حَقِّنَ حَقِيقَتَنْ وَعَلَىٰ كُلَّ سَعَالِ نُوهَا فَمَا اللَّهَ کتاب الله تا و مقابل کتاب الله فرد درور البته اینجا مقابل کتاب الله به اصطلاح مطلب شوشن نیست آلا هم بشه هم بر حدیث ممکنه که مراد مضمون حدیث باشه نه خود حدیث باشه یعنی اون گوک که مطابق با کتاب خدا است قبول بکنه این یک احتمال یک احتمال دیگرم ارس کردیم این که پیغمبر فرمون دوشن ماخو آقا پایی باشیم به صحبت اون رو این حدیث در کتاب همون که هستم در کتاب کافی این سنت منطور بود قبل از کتاب کافی در محاسن بعدی بازش بود که بعد محاسن اول مقصود در حاضر و شما از بردی بود که تلاش بود خودش ممکنه ال نوفلی عن سکونی عن عبدالله عبد نابادی عن علی از این کتاب سکونی در اصلش اینطور محمد ان عبی که امام قابل باشه ان ابادی عن تو بعدش داره قال بعدش داشت قال قال رسول. حالا این در این مسئلی که در محاصل برگیز قال ان محلا کل در حقیقه به ظاهرش که کلام خود همی رمونه میگوشه نه کلام رسول الله اما در کافی داره که قال قال رسول الله برها روشی به کتاب سبونشون مفصلن صحبت کرده و هرز کرده نصافا وضوع خالی برمانه داره فعلا نمیشونیم به صاحب بره حتی قبولش داره ما مشکله نگه یعنی اینکه که از رای دیگه ثابت بشه بعد از این طریق قبولی در میاد نرا کل حق حقیقه این کلام خود همه رو مؤمنین نه کلام رسول الله نه یک مطلب یک مطلب میگم از کرده اون نسخه ای رو که مرموم کلیمی داشتن ظاهرن ولی علماندالله مرحوم اقرای هاشم از کوفه به قوم برده بودن. جزای کتاب های به قوم بردن و در بار به اصطلاح پخش کردن به اصطلاح ما. اول من نشر حدیث از کوفیم به قوم. برقیه اگر مراد پدر باشه ایشنا هم احتمال از کوفه آمدن. احتمال داره همون نسخه رو برده باشند. ما جاهدی هم داریم برقیه پسر از ما اگر اینجا برگیه پسر مورد باشه تو نموقعی اواتحا اون ساکن روی شده تهران احتمال داره که شواردمانشون نمیده ما برجه نمیده خیلی هست و از براده اما خیلی هموز رسو پسر به ارام رفته باشه و از همه این که به مکان احتمالا اگر برجی مورد صاحب محاسن باشه احتمالا در ری تحمل حدیست از نوفری کرد و توضیحاتی راجع به این کتاب گذشت و راجب به هم یعنی طریق ابرادنه هاشم که کلیلی نمکدی و خود برقی در اینجا آمده سابقا توضیحی دادیم شواهد ما نشون نمیده چون این مباحث مطرح نشده من توضیحا نرزیم کنم شواهد ما نشون نمیده که برقی یا ابراهیم هاشم کارشون تنقید و و تصیح روایان شده ظاهراً هر چه بوده نقل کردن کار اونها فقط مجرد نقل خوبی قدر کن به خلاف احمد عشقی احمد عشقی ظاهرم اونها که قبول داشته نقل میکن ایشون از توپا بردن علایه هایم از یک اختلاف در اینجا، این کلام ما در امیر و می آماد و تا اینجا دو سنت بود ایتونال مرموم برکی که ظاهرش هم علیهنه یکی هم مرموم نجاج کلیمی که ظاهرش هم رسوله داره مرموم شیخ صدوق در کتاب حالا تبقه شیخ صدوق کنیم کتاب... مرموم عیاشی در کتاب تفسیر خودش که اینجا بیشون از مستدر نعبد کرده هست که میبینید خیلی عجیبیشون تفسیر عیاشی هم زمان های موجودی هم شاف شدون چه خیلی عجیبی که از خود تفسیر مستقی نمید در کتاب تفسیر عیاشی ان اسمایل ابی زیاد سکونی ان جعفر ان ابیه، ان علیه از که این نسخه سخت داره ان جعفر ان ابیه، ان آوائی ان علیه علیه السلام ان نبوبار فما باوره این سادره حدیث اندلاع کل هفت مهاجر ندارم و فا ما وافر کتاب الله را این هم در این متن عیاشی و عیاشی به هر ترکهباری شود یک نسخه کهباری بر کلینه هم مقدم باشه یا یک کهباری بر کلینه هم مقدم باشه. این علاوه به ترکهبار حدیث بیاریم. اول مهاسته برایشون خود خودشه فن نیست حد خودش که اگر بخواهم هم رو بیاریم چیجور بیاریم این حدیث رو حد از اگر بخواهم بیاریم این راه راه درسته در این قسمت اگر حدیث باشه طبعات رو در نظر بگیریم پس اولین طبعه مال بردیه و مال حیاشیه در این دو طبعه انحریه نامده سومش مرموم کولیمیه در کافی اینجا قال رسول الله آمده چهارمش مقوم صدوق در امانیه ایشون داره حدث امام احمد بن علی بن الهاشم ایشون پسر علی بن الروانه نمی‌شناسیم است احتمالاً از بچه طلبه بود رو الاخر پدر علی بن الروانه معروف کتابای پدر رو برای مضمون صدوق نام برده در حالی ایشون نمی‌شناسه اگر سازه نسخه درست باشه چون محمد از ایشون می‌شناسیم حالا احمد رو نمی‌دونن قال حدثنا عدی عن عبین ابراهیم نهاشم عمل حسین ابن نیزید نوفری البته شان احمد و درست نسخه با نسخه کلی یکیه نسخه فرور با نسخه کولنی یکیه که از ابن اینجا توسط پتریشان که نمی شنستی. اما نسخه شوان یکیه اون در اینجایی تردارن اسمایل ابن نسخه سرکونی احن سادر جفر محمد علیه انه انبیه انجدت یا انبیه ان, ان آباهه. این انبیه انجدت جنسی کلیه حذف شد. قال قال علیون علی السلام كل در کل هم خریده. لحنتخیه که مردم شیر سدوب نامون کنه باز هم بالریانه این کار رو مشتاق کنه. چون مردم سدوب که در داشته با نسخه کیه. ظاهرن نسخی در قوم یکی البته از کم چون طریقش احمده مگر بگیم احمد اشتباه کرده چون کلونی که ها جلو شننه مدوم کلونی این مقدار رو کاملا منتقه به که حدیث رسول الله یا نهیه چون این رسول الله باشه و پیامه خودش مشره است و اما به دست ایشانه بخلافه هنه علیه ولی یه توضیح هم که برمیدیم اینشالله روشن میشه که مطلب جوری. پس تا اینجا ما دو مستر قبل از قلیمی داشتیم اونها ان علیه هم علیه خود قلیمی رسول الله صدوق بعد از اونجا هم به اصطلاح در اون عبارت صدوق هم ان علیه هم علیه پس مجموعه در سه مستر علیه هم علیه در کتاب کلینی فقط قدم رسول الله حالا اگر ندیم که شواهد کافی است که این عملیه درست باشه و کلام کلینی رو قبول نکنیم لاعقل این میشه که شعبه پیدا میشه که حالا کلام رسول الله و عملیه ارزش عرضش این دوتا نهی که مثلا علیه ارزشش نه رسول الله این است که اگر ام رسول الله باشه خوب دقت بکنیم احتمال داره ناظر به سنن رسول الله باشه یعنی پیغمبر رو من که جعل میکنن این ناظر رو مقام سبوت شده اگر شنیدیم من احکامی رو جعل کنم این احکام من در زور اورهانه این یک بسه اما اگر علیه باشه، اونم با خطاب با مؤمنی این مقام اثباته این دوتا خیلی پرانه این از امروز گفتیم که این مدلب چون ممکن است این از رسولان باشه برای کتاب الله اما یه چین چیزی باشه مراد مقام جعله نه که پیغمبر خبر بده یعنی اگر به شما گفتم پهنبر چین حکمی رو خرمون ببینیم با شواهد کتاب میساز نه اگر نه. چون حکم من هم سنن من هم در دایره قرآنه مثلا در آن رضا در دو تا آمده یکی در مادر که خواهد ما در باران رضاه بگذاری نداریم اخوات و امهات رضاه پیغمبر فرمودن که نه رضا یا هر رومون رضاه یا یه رومون رضا ما یا هر رومون نصر تعمیم دادن یا از پیغمبر نه که مثلا آیشه زانه یک عمویش داشت رضایی بود یا خطایی داشت امو پیغمبر بود فرمودن که که این لازم نیست حجاب بگیری این عموی تو یا مثلا دختر عمو دختره دختر عمو خواهره دختر برادر ایشن. که وقتی امیر اون گیر دختر همزه رو خودش بگیرین گیره همزه برادر منه که روی شهادت کردیم حمزه از به اصطلاح اون به مادر حضرت رسول یعنی مادر رضایی حضرت رسول که فرستادن یاور اونجا بر شیره حلیمه مثل حلیمه صحیحه همزه از او شیر نخورده هواهیی که به همبر روزانی آمدن یک چند روزی یک به اصطلاح کنیزکی همه ای داشت ابو هم به نام سوایبه این هم به پین همبر شید دو دو این کنیزک هم به همزه راهه این که همزه هموی پیغنبر بردریشون از واح سعدیه نیست از کنیزه به اصطلاح عبوده همویشون و که که این پیغنبر کامیه که اگر من جعلی میکنم این طوریه. یعنی این جهل من و تأسیس من و تشریع من این در حدود قانون در دربارانه کسی که الان مثلا کسی میگه اگر مجلس میخواد قانونی وضع بکنه باید در حدود قانون اساسی باشه اصطلاحاً اونو حدود قانون اساسی باید مراعات بشه پس بنابراین اگر پیغمبر (ص) ما واقعاً کتاب الله مراد به مقام جعل قاضیش بود باید اینطور بکنه اگر امیرالمومنین ما کتاب الله مقام مقام اثباته مراد کریتیته راه اینکه بشناسیم های واقعا نیم بوده یا نبوده این دو ها با همدیگه فرق میکنن در یعنی در حدود قرآنی باشه حد در حدودش مثلا در قرآن ربای نسیه در قرآن حرامی ربای در قرآن ربای نسیه است پیغمبر ربای نر رو هم حرام کرده این مواقع کتاب یعنی اصل ربا در قرآن بود این هم توضیحاتش ارز کردیم تا اگر یاد رو باره باشه سنن پیمنبر در مقام واجبات داریم و محرمات در واجبات سنن پیغمبر مکملات یا محسنات شما مثل که یک ساختمان بسازین اینکه اتاقی سنن به منزله گرشکاری و آقاینکاری و چراغ گذاشتن و این هاست و سنن در محرمات یا یک موضوعات است که ملحبه اون میکنن یا از باقه مقدمیت مثلا خداوند متعال که رباره حرام کرده ربار نسیر رو پیغمبر میفره اگر قرد هم دادی به زنبال منفعت بودی اونم رباره است. این یا یک مصداق است و رباره که پیغمبر فرمده در محرمات اینطوره یا پیغمبره که ما خود ریشی رباره بکنن میگن شما حتی این قرضی تشمن فعلت انجام بدید چون این یاد گرفت با وقتی خرض داری منفعت گرفتین یا گرفتیم یعواشهاش معدیه برمان میشه لذا خود دقت بفرمان سنن پیغمبر در واجبات یک شکل مثلا نماز بوده پیغمبر رکوع بوده سجود بوده اما اینکه که ذکر بگیم این جز سنن نبیه مثلا تکریر بگیم چیم بگیم من روز سنن پیغم پس بنابراین اگر فرض مطلب باشه یعنی شما باید نگاه بکنید وضع سنن پیش من اینطوری است در حدود قرانی چه در واجباتش چه در محرماتش ما در واجبات سنن شأنش تکمیل در محرمات شأنش یکی از دو چیزه یا یک مصداقی رو که ما مصداق نمیدونستیم مصداق قرار میده مثلا شما اگر ده کیلو برنج بریم که بعد از یک ماه ده کیلو بریم خب این میدونستن رباس ایشون آمدن بسه اگر نقضن باشه باز این ربای نقضی که نقض کردن بعضی اصحابه مثل عبدالله نقض با قبول باشن و فرمه به این ربای هم در اینه که ربای نقض در مکیل و در معدود دیگه ربای نقضی نیست تقنش دارن نقدی اگر طعش رو به شش رو بزوشه نداره. نسبتاً روام میشه اما نردی اشغال اما اگر گندم رو 10 کیلو گندم به 12 کیلو گندم نقد در بزوشه اونم رواست. باکن روای بهجعه رسول الله نه قران. اسمش روای نقد میذارن این اصطلاحیه. پس یک روای نقد داریم ما الان میگیم در اصطلاح روای از به یتن در یدن و در روایه نه در به اصطلاح مکیه موضوع جعل پیغنبر اما در روایه نسیه خدا جعل بروندن مطلقا اگر دیدین بعضی از آیان میگن با این اسکناس هایی که هست اگر به سا تقابل به اشکال نداره اما بدن به و قرض و نمی نسیه اشکال داره سرش همینه یعنی اگر ستوان بده بعد از مدره 120 هم بشه او برگردونی این میگن رواست و حرام نه هم. اما همین یعنی الان ستوان هم بده به 120 برشه به 120 میگن که روایه نه بده و اسکناس خناست هم جزه محدوده. نه مکیله نه موتونه اما اگر مثلا طلا باشه برنید باشه 100 کیلو برنید و 120 کلو برنید نه این جزه روای نه دیست که حبر ما رسول الله و این همون اشکال معروف زمان صاحبو که عبدالله عباس این حرام نیست این زبای نه و عبدالله عباس از این روشنم بعدها برگرش و به حرمتش علایه حالا چون برد زرباز اون وقت اینجا با در بخش میشه اون وقت نتیجه این میشه که مراد پیغمبر این است که تشریعات من و قامونگزاری من مطابق است با کتاب در همون حوش کتاب کتاب الله اون حدودی که داره حدود کتاب الله این راجعه بگیم برواید این رواید در چند کتاب در یک کتاب دیگر ما هم آمده در همین کتابی که دیروز شرک مفصلی نسبت به بحث خودمان چون بخشونیم حکیم بحث دارد بشیم هز از کتاب رساله خود برابردی ها هرچی اسمش هست به همون سندی که دیروز خوندیم این همون سمن دیگه سکتا دارم کنم انا عبی جعفر ابن باقره صدوق پسر انا عبیر انسعد ابن عبدالله انا یعقوب ابن یزی که از اجل همیشون از اجل هم انا محمد ابن عبی عمیل انا جمیل ابن نراج انا عبی عبد الله السلام آر الوقوف و اینده شبه خیرون من تمام فلحلکه اینه علا کل حقن نحقیقه و علا کل صحابه نورا و موافر کتاب الله البته این مرموش شبه مرادشون شبهات حکمیه است نه شبه خارجی در شبهات حکمیه بیز. این روایت الان به با اون مساده که تا حالا نقره کردیم مجموعا خب حدود چهار مستر در اون رواس سکونی نقره کردیم این روایت از چمیله در, چمیل در را جنبی عبدالله هست. لیکن این روایت هم مشکلی که هم مشکل که درات دیروز عرض کردیم یعنی خیلی تحکیباوره در که همان در هیچ مصدری از مسادر خودمون این حدیثه نداریم. ادلا در همون رساله لاقل مجرودتون مصدر برمان. این توی اسمیشون چی بگیداریم؟ چون مرموم استراغالی شخص بزرگوار است. این رساله را از کجا پیدا کرده؟ مال همون آیه خواست راوندی است. ما کسی دیگریه. حقیقت هم رشی چی بوده؟ علای آلم؟ شواهد ما هم باز حاکیز که این رواهت هم از کتاب محمد نبی عمر باشه سابرانم از کردیم چون فرد اشاره کردم یکی از رواهت مهم کتاب نبی عمر یعبو برنی که یکی از رواهت بسیار مهم میشه افتیمالم دور کتاب رحمه صدر نمد الله باشه چون به موضوع کتاب میتواره بحثه وعلا کل حفظ نبیجه وعلا کل طابل دورا هم در ایه حاله شواهدمون رو بر این روایت قبول بکنی به لحاظ نقلی خیلی مشکله. بله کتاب سکونی واضحه. انصافا دیگه شواهد خیلی زیاده کتاب سکونی. یاد کردیم کتاب سکونی هم سابقا که این اجمالاً کتاب سکونی اجمالش حالا تفصیلش اونها کتاب سکونی اجمالاً برگشتش بیه مجموعه بوده که از امیر المومنی سلوات الله و سلامه علیه نقل می‌شده حالا به کیفیت مختلف یکیش کتاب سکونی بوده که از امیر المومنی الله و علیه نقل شده که اسمایل ابن مسلم سکونی به اصطلاح حضیشان آورده ارز که بهال عرض کن. نه ترس این متن استرابادی از جمله ن دروازه پس این مطمئن میشه که در این دروازه در یک احتمالم داره. البته چون الان کتاب این آقا رو درست نمیشناسیم یک احتمال هم داره که این رواز جمیل ابن دراج این هم توش انستکونی بوده داره یاره سامو. تو مالمم و عروج بود خیر اون نمتنش از و فن هلکه و تحقیق وایت حادیث که مدرود حادیث ندم. طولی ویال نتن. است. این عروج کل و کل و فکت وظارف خودو و مقر و, و در حال نه احو كثير من و دار هم سابقاً چند بار از کردیم ایشون در خراسان و سفرنگ بودند از حوزه های دور بودند اما مصادر فراوانی داشتند و متاسفانه کتاب ایشان فعلا مرسل به ما رسیده انصاب رضیه با مراجعه ای که ما به مجموعه رواید اینجا داشتیم باید اینکه همه کتاب من نایدم نشون میده که دهی از مسادر در اختیار ایشان بوده که در اختیار بزرگان اصحاب ما هم نبوده و مرد بسیار کرکاریه عبارتی یه روزی همینجا تو درستیم فقه حساب بود بود از عیاشی که مثلا برداد و حساب این بود خراسان در کوفه ابن فضل رو دیدم چقدر بافن. مثلا به ابن فضل نوشته جمیع کتب اصحاب رو او دیدم. کسی رو ندیدم در مثل خراسان و در مثل قم و در مثل بغداد و در مثل کوفه و مثل علی بن حسن فضل. خیلی به هر حال این شواهد ما قطعی است که در اختیار مردم عیاشی مسادیری بوده که الان در اختیار ما نیست. اگر متاسفانه بخواستی که کتاب موجود فعلا به صورت که سال در آمده نمیتونیم فعلا به لحاظ با جیه پوک بکنه این یکی این روایت اگر در کتاب عیاشی از سکونی این طور بوده یعنی احتمالم داره که ان جمیل ابن دراج انز سکونی این عبیردالله اگر یاد فتن یا ما یاد گار آویم باشه ما گاه گاهی توی اصناع بحث سکونی این نقطه عرض کردیم ما الان در کتاب موجود داریم در کتاب عربه دو مورد سه مورد داریم که جمیلیم دراز از سکونی نفر میکنن احتمال هم داره که این موسیقه از سکونی افتاده باشه از آیا حاله قدرمتیتن از این روایت روایت سکونیست و منصوب است به امیر و و قدرمتیتن از این روایت اون چیزیست که منصوب است به خود امیر المومنین ا این تا اینجا البته کلن حدیث کنی محل اشکاله و این سندی رو که مرموم راوندی آورده. اگر تا صدوق تا صدوق درسته اگر کتاب ثابت باشه مرموم خطب راوندی است اون حدود هم صحیحه صحیح جمیل ابن دراج حالا این کل... کل حاله فعلا اصل این مطلب اجمالا بوده اما الان نمیتونیم خیلی روشن واجبه او تصمیم گیری بکنم به هر حال علا تقدیر این که این روایت قبول بکنیم این هر دو درش آمده چون مرحوم استاد این دو تا رو عنوان جدا کردن یکی روایت که ما خالف از کتابی روایت که واقعا که کتاب و از اینکه هر دو آمده پشت سر هم باید یک دیوری باشه که به رابطه باشه نمیشه این یک دسته قرار یک دسته. و موافقه کتاب الله خود و حضور به کتاب الله و پس از این هر روشن میشه که مراد از موافقت و مخالفت باید یک جوری باشه که با هم رابطه دارند. اینطور نیست که یک شما یک طرف باش که یک یه طرف باشه مراد از موافقت و مخالفت باید این جوری باشه چون خود این مطلب هم محل کلامی که مراد از مخالفت و موافقت چیه تا اینجا اون که میشه قبول کرد اگر ارسول الله باشه یک جور معناش میکنیم اگر از همین مؤمنین باشه یا ایمان صادق باشه جور دیگه معنا می‌کنه. من یادم حالا چون جنبندی نهایی رو برد میکنم ارز میکنم خاصه رو جنبندیه قسم اول رو بگیم شوارد اولا اگر ساعت برد شده این یکی من پنجابه هشت ثانیه دقیقه یه رو مونده؟ از این یکی بنا خرابه اون که خابیله یکی میگفت که ساعت خابیله بهتر خاب... خابیله بهتر چون در دو بحث روز یا شنف مطالبه باباقه خرابه ماهتر باباقه عرض <تصفيق> کنم که حدیث شماره 9 مرموم شهر کولیدی در کافی عرض کردم در کتاب الهل مرموم کولیدی با ویدونام شباز در کتاب از داره در اونجا اید تو من اصحابم عیوب هور. خوبه و برقی هم این رو علي کرده. البته بین که از برقی و خود برقی اختلاف این اختلاف موزر نیست این اختلاط معناشی نیست که خدا نکشه خدا نکشه صبر بشه مرقوم کنین دستوری کرده چون تو کتاب خود برقی داره عن ابي عن علي بن نعمان عن ايوب بن هر باز در خود کتاب کافی داره برقی پسر عن ابي عن نابر بن صبيد عن يحيى الحلبي عن ايوب نحوه اسموال داره هر دو طریق بوده در این مواصلی که وارثه مثلا این نسخهش اینجور بوده یه طریق دیگرم داشته همونی که مرموم کولینی نهار کرده کمانی اینکه سابقا احتمال دادیم این اختلاف نسخه ها خود که برگی باشه اصلا برگی اول به دو آسته این حدیث نهار کرده از پدرش بعد در نسخه جدیدی که نوشته و بازسازی کرده یکی واسته گذاشته. حالا یه این مهمشی نیست که خدای نکرد دستکاری از طرف کسی در نسخه شده مرهوم عیاشی هم در تفسیر خودش این ایوب ابن هر سمع سمیه فعب عبدالله علیه السلام یقول کل حدیثن یا کل شیئن حالا اختلاف هست در نسخه. مردود اون الان کتاب و سنه و کل شیئن باز نسخه از کل حدیثن. لا یوافق و کتاب الله ذکر زخروفا چون این الان نسخش شی و حدیثه قبولش مشکله لیکن برد نیست کل کلو حدیثه مردود کتاب و سنه و کل شعی این و اداکه کتاب الله پس این لایو هم با همون مردود در کتاب و سنه رابطه داشته باشید حالا بعد اعزم از جمله روایات که ما در مقام داریم مرگوم کلینی باز از محمد ابن یحیا استادشون از احمد اشعری که بزرگوارن انه ابن فضل توضیحات ها زیاد رئیس از که ابن فضل پدر که مرگوم کلینی از ایشان توسط احمد اشعری نرمو کنن انه علی ابن آقوبه نیست شواله خوبه انه ایوب ابن راشد احتمال رو کنین ایوب راشد و ایوب نهور باشون نوسه مثلا چون برقی بوده این نسخه عدد از اونه آل مالام یوافق من الحدیث القرآن فهو زخور خیلی شبیه اونه اون حدیثی که با قرآن نیاد این باطله اجمالاً میشه قبول کرد لکن مالم یوافق رو معروف شد که نباید جداگانه معنا کرد که مردم استاد این کار انجام دادن باید در ضمن کل حدیث مردونه در کتاب و سنه مناقی مرهوم عیاشی در تفسیرش حدیث شما رو یازده این به الاسدی مرد خوبی بوده کله خیلی به اصطلاح رویه که کنفیم شخصی که از دست به شما علاقه دارست کلیب بزیش کنیب یعنی سنگ و سگ خانده قال سمیع زبا عبدالله علیه السلام یقول ما آتاکم عنا من حدیثم لا یو صدق کتاب الله فاقوه زخرفه این ما مرکنه ای روایاتی که حالا تا اینجا خوندیم چند تاشو داریم باز در کتاب مسترک اون ایاشی محمد ان محمد بن مسلم الان هست کردم انصافم مثلا حدیث و هسری رو ما خلند نداریم الا از این هست که مرهوم عیاشی قدس الله و خیلی انصافن اطلاع بر مساقه را از داشته و خیلی هم معلومی خیلی هستی این اگر اسامین متعدد بوده با اینکه متن واحد بوده همه رو نقل میکرده باز از محمد این که باز هم نداریم فیرنیم قال ابو عبدالله یا محمد طبعا این احادیث عیاشی و فیرن به لحاظ مقام و جیت نمیشه قبول کرد چون فعلا ارسال داره یا محمد ماجع که فی روایت من بردن او خاجه یا ها قرآن فخوز به البته انصافش قبولی که یک خاکه فی روایت بکنه وشون قد مخابقه با قرآنه ما قبول بکنیم خیلی مشکله علمی کار بسیار مشکلیه خیلی کار مگر همون نکته ای رو که بنده در اول درست عرض کردیم که این روایاتی که این تعبیر داره, داره بر واقعه بگیم ناظر به مضمون نه ناظر به روایت وقتی می گه یک واقعه کرده خب شما حالا فرض کن میگن این آیه حالا باشه نباشه رحمد بن رد اول بختیری خیلی استاد بوده سحنی کرده خیلی قشنگ حدیثی علو کنه با شواهد قران و سنت عزیز خودش مله بوده رسوا فاجر گذار هم بوده قاضی بغداد بوده اول قاضی و بعد قاضی برزان حاله به مجرد این که روایت تاجر باشه مجرد موافقت با کتاب انصافاً خیلی مشکله قبول این مطلب خیلی مشکل مگر همون نقطه ای رو که من اعرض کردم مراد مضمون باشه یعنی میشه مضمونش قبول کرده خود حدیثی قبول فاتری بختیر لیکن مضمونش رو اجمالاً میشه قبول کرد ایم این ما فی روایت این ما کنایه همه معناست مضمون مضمون یک حکمی که در روایتی هست ما یعنی کنایه از حکم حکمی که در یک روایتی هست حالا بهت بگت کریم چون ندارم مثلا من روایته نیست فی روایته نه بگیم ما جاک فی روایت هر حکمی که در یک روایت آمده روشن چون چون منابی ما رو کرایعت حکم بزنیم منبر و فاجره یواف این یافت اون ماججاه فخود به و ماججاه که در روایت منبر و فاجره ی خوان القران فلا تعخذ به یا بگیم چون مضمونش خیلی روشن نبود اصحاب ما حذف کردن دوزاره واقعی است که به اصطلاح روزی ما یعنی رسانساب شده این جزء روایتی که حذف شده علضا در تفسیر عجیبی آمده اینو خوب دقت بکن اگر شما میبینی یه در یک کتاب‌های مشهورانی از خود خراسان سردی میاره اینگاه اوقات تعمد اصحاب بوده و چون قبول این مطلب خیلی مشكله یعنی یک نفر فاجعه‌ای بیاد مطلبی رو موافق با کتاب قرآن بگه شما وقت این موافقه در اینجا اجمالیه مثلا ایک کسی فکر کنه بله, بله کسی که واقعا عمل انجام روز قیامت مثلا تجسم عملش اینه خب اصل تجسم عمل در قرآن هست اما اینکه این اینه چون یک فاجر گفته چطور ما این به اصناد بدیم؟ خب دقیق بکنیم یک فاجر نهار کرده درسته این مطلبی که این گفته موافق کتابشون در قرآن تجسم عمل هست دوزه قیامه اما وقتی یک فاجر گفته این تجسمش این طوریه اینو از کجا قبول بکنیم و کذالک روایت بری و خالق القرآن یکی در یو خالق و قرآن یکیش در یو آقاق و قرآن خیلی مشکله این قبول ظاهر باید خیلی مشکل است و مشکل و روایت تحضیح و به نظر من میاد سابارم عرض کردیم به نظر من گرم مرمومه شیخ توسی قدس الله سره در دخت نوشتن تحضیح و استرسان کافی رو عصود کافی رو نگاه نکرده به نظر من اینجور میاد چند دفعه عرض کرد. مثلا این دو تحضیب این طور در نبی و ما علیه و سلام این حادیثی نیوارده فقط اشاره کرده ظاهرم مرادش از نبی همون را سکونی باشه یا این دیگه که از رسول الله نه رو شد دقیق کردیم؟ بله رو بیعن نبی و ما علیه و سلام انهم هم قالو الاجاکم هنه حدیثون فعر زوح علا کتاب الله ف ما وافر کتاب الله فکر کدو و ما او فتره فتره, و فتره و یا رود دوهو علی تو بعض از روایات داره که اگر حدیثی رو نفهمیدین ردوه دوهو علی اینشون اشاره بوم داره. آلا مرحوم حالی مضمون رو مضمونه کرده ولیکن که از کردم این مضمون راجع به النبی یک چیز راجع به چیز شیزگر اینشون یک نواخت گرفتن قبول یک نواختش خیلی وش از جمله یه روایاتی که ما داریم باز محروم کلینی در جلد دو این تو باب ایمان و کفره تو باب علم نیست همه محمد بن یحیان احمد ابن محمد که اشعری باشه انا علی ابن حکم از سکر محروم احمد اشعری سفری که به ایرام رفته یدهی از بزرگان یکیشم علی ابن حکمه حالا علی ابن حکمه علی ابن حکمه زبیره. چیز داره مدک شهردیه مداحنه چیه دیگه از ابن حکیم هرون اسمش علی بن نیست یه است احتمال داره که کلینی قدس الله نفسه در اونجا از ایشان آثار ایشان نامی کرده انا عبد الله بن بوکید کوفیه انا رجولن انا ابی جعفر علیه السلام ارسال داره بود دخلنا،, دخلنا علیه جماعتا شاد باشه به نحوی اجتماع وارد شود فقل يا رسول الله يا رسول الله اذن نريد العراق اوسن فقال ابو جعفر الصا ليوقد بشديدا فشدید و کو ضعیف و ليعهد غني و كم على فقير و يا ولي و ليعهد بنيكم على فقير و لا تبسطوا ثنا و اذا جاءكم عنا حديث ف وجود تم علیه شاهدن من کتاب الله فخود به و ایلا فبکوها اندم فم رد دوهو علینا حتا یا ثبین تا روشن بشه یه یعنی احتمالم هست که این مطلبی که تعریف شده که حدیث و موافقت کتابینا شد شاید اهل امر حدیث اهل بیتوده و لذان امام فرد اون رو دو به اینا حتی ایستوی نکنه. و اگر این طور باشه شاید در عوائل اینجور بوده بعد که شیعه تدریجن زیاد مدینه رفتن کوفه بودن. هی رفتن مدینه آمدن بعد از صد امام باقی برد امام ساده دیگه به نظر من میاد که مثلا یواشتواش این مطلب حرزب شده باشه احتمال داره حالا غیر از اون رو بات رو که فهمدن تو آفیر حتی علاوه بر ما ان المنتظر الهادی بعد از صحبت بحث قیام و اینها مطرح میکنه از تو زمان امام باقر کسی از خاندان قیام نکرده میگن بالا چیه چون قیام زید بعد از شهادت امام باقر به 7 ساله تقریبا سال 14 یا 16 هجری گفته شده وفات امام باقر شاد ایشون 120 یا 121 قیام زید چون این ماهد سفرم هست یعنی ماهد سفر اول ما سفره. هم. که این هم ایام بود بزر. یاد بود شهادتیشون الان که به ماهکان دیگه نیمی که حالا چطور میشه بله. و من ازدک قائمان ها این ت... تعبیر به این در اینجا راجع به قائم ها چون در زمان راحت اون ساده این شبهه بود که این بودن زید قیام کرد شما چرا شبه قیام نجو کنیم همون زمان امان باقی شبهه قیامی کردیم. بر علیه بنی اومی و اومده قیام سیر و شهده است و بعدم زند. اما علیه بنی عباس ایلام از این علیه های مدینه و غیر مدینه خیلی قیام کردن از خود براده از رضا و غیرشو و اولیش هم خود بر علیه بنی عباس همین قیام محمد از زکیه و پدرش عبدالله محض و این هاست اما قیام از که عبدالله محض خودش ادعای جدا بردش اما قیام است. به سیفش سر به سرش محمد. این عوائل قیام بر علیه بنی عباس بعد زیاد شد خیلی زیاده اون که شما این کتاب مقاطر و طالبی که اول فرجه اصفهانی نوشته این بیشتر شمال زیدیه ها علیه بنی عباسه علیه بنی عمی کم علیه بنی عباس خیلی زیاد. حدیث شماره 15 این حدیث به حضرت داره بد نیست کلی توسط محمد ابن اسماعیل، ایشون شاگرد فرز نشازانه شازانه همیزم برای ما روشن نیست که ایشان به قوم آمده میراسای فرز و برای کلی نرفته یه کلیهی به نشابور رفته هم های فرز و از شاگرد ایشان از محمد ابن اسماعیل نشابوری گرفته باشن توصیه سریحی نداره اده از متأخرین مثل من امیر دامادی که خیلی شیخ هم جلیگ رو کنان که ها استظهارات شخصی خودشه، مصادر قدیمی همراهش نیست. ابن ابی امیه از کلمه فزلی که از های برجسته ابن ابی و راوی آثار هر حال اگر بخوایم ما اصطلاحاً اسم بگذاریم روی مبانی خودمون این یک نُسخه نیشابوری یا خراسانیه از کتاب ابن ابی عمره. چون از کتاب ابن ابی عمر که متعدد داره. این نسخه رسیده نسخه خراسانی یا نسخه نشابوری یک نسخه خراسانی نشابوری از هشام از ابن عبی عمر هشام هشامون نحکم و غیبی انه عبی عبدالله علیه السلام قال این جزب خطب معروف رسول الله البته اینجا در کتب اهل سنت نایی من این مطلب رو خطب نبی صلی الله علیه و علیه و سلم به منا در منا این خطب رو خوندن می آمد آن شوارع خیلی معیادله نیست. سوال ایها الناس ما جاءكم ان کتاب الله فعن قولذو و ما جاءكم يخالف کتاب الله فلن اقول این کلام ابول هو مراد قول تنها نیست مراد جعل مراد به اصطلاح مسئله به اصطلاح تشریع قانون گذاری نه به مجرد اینکه فقط بر مطلبی رو فرموده باشه این روایت الان خب چون بنا اینه که ما محمد بن اسماعیل قبول بکنیم واسه بین بروب کلیمی و بین فزم ما یک مقداری بخصیم که کلیه لایاحت و عن شذوز که کله و اشی روز داشته باشه این لایاحت و عن به اعتبار این خطره از بین بر در من در مدان شده مگر از این از ولی مانع اکنونی یوافه کتاب الله خیلی بعیده که به ظاهرش باشه که مراد حدیث باشه و هم حال مرغوم برقی در محاسن خودش ال برقی علی ایوب المدانی آن هم نابیو عمر آن الهشامین مرغوم برقی از این نسخه ال ای نابیو عمر ترسوته ابو ایوب المدانی میع ابو ایوب اگر این مطلب رو اضافه بکنیم به تصحیه فزند نشازا که مشکل نداره اگر در نظر بگیریم که مرمون برقی تو نسخه ابو ایوب به صلاح ندائنی دیده احتمال داره که احتمال داره مرمون فزند یک نسخه این مشهوری رو از نبیان نبیان نبیان کرده این نسخه مشهوری نیست نسخه ابو اگه در مداره میگه ملایین که برگی کتابش آتن زریفتره ما در, در دوی مراجعه به کنیم آتن اما اینجا اگه درست باشه احتمال داره با اون جلالت قبری که راجع به حضر نشازان می‌دونستیم، احتمال داره دلیل نسخه ضعیف از کتاب نبیان رو ده در کتابش ضعیف در نسخه‌ای که از نسخهی شابوری سوال ما یا خراسانی فعلا مشکل نداره مگر بیگم مرموم محمد ابن اسماییل اشتباه نیشون توصیق نداره فقط واسطه از بین کله این فضل نشازان علایه حاله حدیث به لحاظ ظاهر به اصلاح بین قدمای اصحاب ما به خاطر جهالت محمد ابن اسماعیل یا میگفتن حسنون یا میگفتن ضعیفون. اما غیر از حالا حسن و زعیف مشکلی که داره وجود ابو عیوب مدائمیست قبل از ابن نبی عمر که این نشون میده که این نسخه نسخه درستی از کتاب نبی عمر نبوده. تازه داره انل هشامه جمعه و غیره ما آل خطب النبی فقال الى آخری ای حالا یه این چون اوی ما با پیدا بکنیم فقیلن خیلی وصول بسه حتی این نسخه نداره ولو در اختیار مرموم کولینی بوده مرموم و یک چیز بوده یک کتاب های بوده مثلا کتاب ابن عبیر عبیر نسخه داره انفراد هم داره گاه کلنی چیزه نه همونی که دیگران نه هم لکرد انفراد هم داره مرموم عیاشی هم در تفسیرش از هشانه حکمان عبدالله داره این را هم همون الکلام ما هوا چون کتاب عیاشی پیش ما نیست ما فقط چیزی که می کنیم برای ما ثابت شده که یک نسخه از کتاب هشام نه کتاب نرگامه یک نسخه از کتاب هشام پیش مرحوم عیاشی بوده که اون نسخه مشکل مشکلی داره به هر حال توضیحاتی که این باد یک جای دیگه داده بیشه خیلی مفصله و یازه چیزه از که که حالا بخته نشده این که طول می این یکی از روایات خیلی مهم که به خود پیغنبر نصف دادن. این یکی از روایاتی که موافق کتاب الله وقتا آن شد دیگه نیم. این روایات که خیلی مهمه این هم که شما خالی از شغه ریزم که این هم الان شغه داره و سال الله علیه محمد و آرده.